من نفسه اثر کندارا تا حالا یک یا دو بار پدرم را دیدم که نواستو بخواند. چند بار به طور غیر مستقیم گفتم ولی جواب نداده بطور طور مستقیماً نمی‌توانم بهش بگویم دل هم قبول نمی‌کند که کن نواستو بخانه به نظر شما چاره چیز بهترین راه حل درفتن کتاب فضایل احوال و خواندن در منزل فضائل اعمال درود پدر خواندن وقتی که آمادگی دارد و فقط فضائل بخوانید بخوانید بخوانید خودش بوش کند درستگی و نحی کردن پدر درست نیست و به دیگران دوستان تبلیغی کسان دیگر رو بگن که با او صحبت کنند اگر میشه باید تشکیل بشه که خیلی خوب باید خوب میشه